شبان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب دل عالمین و صلوه و صلیه نرسول الله و آله قیبین و قاهرین و معصومین از تو داریم و داریم اجمعین آمامون اخیر ناجعین از مشترین ورحمنا برحمت که یا رحم الراح که ما در زیل شرک کلام مرگونی متعارف که تو بحث شون جمله این بحث به اصطلاح وجود هم در شواب مستوی موحد البته مراد ایشان این نبود ها ما همچین به مناسبتی وارد شدیم پیدا اطلاق خود محقق یروانی قدس الله سره این نبود روشن بهوشه بشه بل. در ایشان عبارت ایشان دیگه تفصیل بخونیم یا نخونیم در واقع تفصیل بشه الا ان نشأن کی ان اصل فه لا خصوصیت كون الهبه بر هم مجانی قاطعا در زمان اصالت اثبات هبه مجانی نمیکنه و مالم تثبت كان عموم زمین بزمیمت اصالت عدم عنوان مخصص این مراد ایشون بر اثر کاربرد عنوان مخصص استصحاب عدم عزلی عنی تسلیط المالک علامالهی مجانن اگر شک کردین این مخصص آمده یا نه اصل میشه این حجتن علی زمان این حجت پس عموم علیت رو به زمینه اصلت عدم بسیار عدم مخصص یعنی تسلیط مجانی و یوم کنون مناقشت و اصل الاصل مذکور به انهو لا یعین حال علیت خارجیه. این توضیحاتش تابقه هم گفتی این از حال این تصرف خارجی مرد می کنم از یعنی خارجی ید آبای قاضی چون این نصف ماشین رو داده به قاضی و انها یدون الامال غیر این اثبات میکنه که این مال غیره قاضی مال غیره دستشه و مالم یثبه کیف یسوق و تمسک به عموم علید دیگه جایی شبهه نصلاحیش میشه شه الَّذی موضوعه الید و مال غیر این هم اشکال دیگه ایشان که بسید این از این یومکنون منابشه که دو سرس و خورده من فقط خوندم و توضیح از خیرده احتمال میره مالیشون نباشه خیلی همچین فنبی نیست علمی ولی زایشون میتونم با بالاخیل اگر این موجود باشه یرجه الی استثاب بقای المال علامن که مالکه یعنی به اصطلاح دیگه اصول مهریزی موضوع نمیشنیم اصول حکمی جاری میکنیم نه اصل موضوعی شک میکنیم میگیم با مال باقیست بر ملک مالکش مراد از ملک مالکش یعنی اون شخصی که داده اون طرف دعبا که به قاضی داده و منطلقه ها اگرم موجود نیست الا اصالت برایت زمت من از زمان البته خب این اساس برایه با استثاب برایه به ملک مالکش با تنافی داره ول و این کاند نتیجه تو هما ترحل علم اجمالی لا تنزال که فلالتزام دونن عمل چون بناش که اگر دو تا ارسول و معارض باشی مطا... مطا... چیز باشن دو, دو مورد باشه اشکال نداره دو سطح و اخیر حالا یه حدی واضحه بخواین شهر بریم و توضیح بریم که درست نیست مصدرگیشان طول میکشه از بحث خودمون خارجشی برحال من مطلب رو خلاصه بکنم برگردیم به اصل مطلب از شد که و مناغش که شده ما چون عادت هم هم اول که شیخ و غالف هم سر می هم آخر بعد از مناغش ها مرحوم شیخ فر اولی رو که در اختلاف مطرح کرده، اینجور فرمودن. فر اول دو دا هدیه ملحقه و غيرها و, و اینو دیگه توضیح داری لن دافع اعرف به نیجته میگه من میگم خودم رشوه دادم بران هدیه که جلب محبتش کن به نفر من گفت میکنه این همون ای است که از کردیم که کل مالای عورت الا من قبل قائله یا صاحبه و قول او فی و از کردیم اده از اعلام من هم مرمو ای روانی من هم مرمو استاد و اده ای من هم خود شیخ قد از اللهم است. در خیارات اشکال کردن که این قاعده به کبرویت ثابت نیست این هم اشکال محروب. ما همچه قاعده کمروی نداریم و هم توضیح ارز کردم تو در این چرهان از درشن و استاد دیگران ارز کردم این قاعده دو تاست نه یکی توضیحات با هم گذاشت و انصافا هم هر دوش هم روشن نیست دفت بکنیم یکی در باقی قضاوته یکی مطلقن از اگر زن من حالزم قول حجز باشه گفت حالز نیستم قولوش حجز باشه یکی در باب یکی در ق مثال هایی که هایی روانی هم هم با که این مطلقه این ربطی به دهت ما نداره به ما در قضا از کردم انصاف قضیه هیچ کدومش ثابت نیست نه مطلقش ثابته نه باب قضا این اشاری که آمی کردم باید لیکن به اینه که تأجرب من, من چند بار هستم که کلمات شد های نبود در که دیگه گرفته هر جور که ما در باب معاملات چراراً از کردیم اعتبار به نیت نیست در باب عبادات اعتبار به نیت هست. که ریا میشه معاقبات باسطه بشه در باب معاملات اعتبار به نیت نیست که نیت منیشه بوده پس دکتر گفته این دواره بگیم برای دردار داخلون بیار من نگاه بکنم کار کنم اگر به دانش خوردوش مصرف نکنه ایشون وقتیش دارو کنه ما این دارو من بدی خیلی نریه بولا نیست دو تا دو تا بی درد نمی بعد که دارو رو می بینن شما خیلی سمج میگه خب من نیت دارم این گوترا رو دکتر دکتر تایید بکنم گفت شو چی نگفتی من ما در باب معاملات نیت نیست من تعجب می شش مثلا اینجا آورده یا آسو اصل در باب معاملات نفس معتدل نمیگه اگر شما هدف اینه که دکتر ببینه باید بگید ببین. بگید ها من این دارو رو می‌خرم به دکتر نشون می‌دم اگر اجازه داد و اگه قبول نکرد باز می‌گم مثلا در باب خاصی خاص اون است و دیگه در رابطه با مریض مال من مال ثوابیات چیز دیگه ماله از امور تابه اصول مراد اینه خوب دقت قصد بکنیم چندبار بارد شده اموری بود نبودیم یه در سیز که شما هر عقضی رو میخواییم اجرا بکنی، عقضی داریم که تابه اون قصد شما باشه آه. یعنی اینشاعتون تابه قصد مثلا اگر شما میخوایید انتقال این در موقع بردی لفظه بی رو بتاریم در معامله فارسی و فروش بطارده. اگر شما قصدتون علقه زوجیته زن و شوهر بخواد شما لازم به بی‌قرار به کار نبرید زن میقوله من بهتون فروختم چون علقه زوجیت با خریدم و فروختن درست نمیشه اگر معامله علقه زوجیت زن به زن شو کنه نه که به که نفسی این الحقور تابع از خوزینش رو عرض کرده هسته این روایت میهیم روایت دخل سنت هم از ما مربوط نیم اون مراد اینه که در هر عقلی یک قسمی مثلا اجاره نقل منافق آریه نقل انتفاق به نقل اینه زواج مثلا نکاح علقه زوجیت هست. هر عقلی یک اثر یاد طبق اون اثر شما باید عرض بکنید شما اگر قبلتون نکاهه لحظه ز... بید رو به کار نبرید لحظه آچه تو به کار نبرید زن نیاد ده مردیگه هر تو کلمسی خودم رو به تو آیه دادم و قصدش نکاه باشه اون عهدی رو که میخانید اون انشایی رو که ایجاز میکنید مطابق با اون محصودتون باید باشه محصود شو در نکاه چیه؟ الغه زوجیته که نیست نقل منافع که نیست نقل انتفاثی علقه زوجی است علقه زوجی در لغت عربی ذکر شده و نظام آورد کردن مگر میگه مطلعی که نفس انسان شغل چون تمام تو غیر از علقه زوجی لازمه، علقه زوجی است و لذا ارکان قدر متعیتن متعیتن در لغت عربی خوب دقت بکنید قدر متعیتن متعیتن در لغت عربی لفظی که وارد شده برای علقه زوجی ذکر شده ان که باز باید بیم و عرف رو وسطش بكونید و لذا لفظی که صریحاً در انشاء عقده زوجی در ریاء اعتماد اخذ بشه. بله. عطول می. مگر اینکه بگیم عرف مثلا عرف آمده مفعلی که نفری در موقت لفظ مفعل رو لفظ درش تو بزنه. و در صيغه عقد موقت که اسموازش صرفاً شکن اشاره داره اما خب معروفیه که کلام را از طرف مرد قال طبول, طبول الله. از و از طرف وجوشی علا چطاب الله و سنتی شرط المعلوم به المعلوم که اضاقالت نعم فریض زوج. اونتا همون مواقع میشود در خود روایت تعبیر زوجیه و قصد دهی به نمی اصلا نه باطله چون ما قطعه دارم یکم و نه قصد به این معنا به این معنا که من وقتی ارداز رو جالی کردم، بگم قصدم این بود که اینو رو دارم بدم فران دکتر ببینید این قصد کافی نیست در مقام انشا چی گفتی؟ دوارو خریدن تا گفت برو فروختن میگه تو چه حال داری برگردین؟ همون وقت با من میگفتی تو گفتی دوارو خریدم، صد تو هم برو میگی نه من تو قسطم این بود به دکتر نشون بدم میگه خب تو قسط تو بود. حالا لازم هست یعنی نه اون بحث دیگری, او دیگری. برای نیست علاقمط تابرتون نبود اصلا چی دیگریه ایه؟ در واقع مثلا قرار بود من باشه اجازه صورتو بدارن نه به واقعیش چون قسط نگردم قسطه فیک کرده اجازه تو هم برای لحظه بی نیست شود نقل این داریم نقل منافع داریم نقل انتفاع داریم هر کدومش در لغت عربی الفاظی <مزدر موزدن> داره، اغلب داره. آن دلایل که اجاره در انتقال تو. نمیشه. نمی‌شه. نه بی منافع. نه اینکه اجاره بی منافع. نه نمیشه نه. بی منافع نمیشه. به اگرم به این گفت باید برگرده به حساب قرفیه دل اجاره اون معنی دیگه به هر حال این که ایشون نوشته لعن ند دافه اعرف و بنیته تعجب از آن ببینید مفروض کلام اینه دافه گفته من بهش گفتم موقع حدیه دادم هدفم این بود که جلب محبتش بکنم اونهای قاضی هم بیگه آز من گفت حدیه دادم اشراکم حدیه هستی دقت قدومه اگر ما باشیم و حسب قواعد نیت دابهی درش هم ندارم. نیت ما بله؟ جواب لازم نداره من. بله، اگر ما روایتی بود که مفصل خوندیم روایت درش میاد داره ما هم شار... ثابت نیست. هدایل عمره داریم هدایل عمال قلوله. خود هدیه به قاضی و به کارگزاران دولت دادن این خودش خیانته خودونه خیانته بله اگه بود بله منظور اینه که نیرو ای قبول نکردید هدای العمال یا هدای ال را قبول نکردیم از کاری خوبی کافی دادید مشهور اهل سنت هم اون ربات نه یه ربات واحده هم شده برای مورد شخصیه شخصی در مغواب اون رو بود دار اهل سنت هدای العمال و هدایل عمروا با قطع نظر از سند روایت اصلا اون راویان کیه چیکاره از صحابی کی بوده این بحث طولانی خلاصهش اینه که این روایت هم بر قصه موردی کردن قضیه شخصیه و, و خود پیغمبر حدی قبول میکردن پیدا زنده جات دیگه در اون روایت حسنی هدیه حدیث اون امدا حدیه رو که قبول می‌کرد پس اگر بنا دقیق بکنید هر ذکلام اینه حالا فرض کلام. آقای شخص میگه من به قاضی گفتم این هدیه خدمت قاضی هم میگه بله با من گفت هدیه، من برای اونان هدیه گرفتم مفروض هم است که هدیه قاضی اشکال نداره بعد این آقا میگه نه من تو قلبم این بود که هدیه بشودم برای که به نفس من حق اون تو قلب اون چه از داره؟ از در باب عقود تابه ابرازه ابرازی که کرده این مقداره الان اگر ما باشیم اصلا احتیاج به این بحثا نداره میگیم این آقا گفته حدیه دادم، قاضی هم گفته آقا من هدیه حدیه گرفتن این آقا میگه نه تو قلب من این بود تو قلب تو چه اصلا داره <تصفيق> و اصلا من این که اصلا چرا این احتمال رو شهر در جا عوضر به آقایان بحث کبرمی کردن اصولا نیت در باب معاملات تأثیر نداره و یه مکتبیه که همین مسئله وارده ممکن است به صورت دیگری ترد بشه من احتمال این میدم بله ممکن است به این صورت ترد بشه بیاست میگه آقا این آقا گفت من پولو بردم جلو خاضی بودشن ببینیم خاضی هم برداشت من تو قلب هم این ممکن بشه باشه خاضی <تصفيق> <تصفيق> هم میگه من درم آقا جلوم من, من هم گرفتم شد شد هم حدیگر با فیل این بله این معبوله اینجا نیت اثر داره اینجا نیت دقت کرد چون با لفظ نگفته با فعل نگفته این هدیه خدمت را. اگه میگم حدیه نیت از ارده بله. دارست قاضی میگه آقا جرانان پول گذاشت من خیال کردم حدیه برداشتم این میگه نه آقا حدیه نبودی نرشتی بخواستم باید من بخواستم انصافه اینجا معنا داره لیکن این خیلی سرز معلقه حالا اگر از این باشه انصاب به قضیه حکمشینه چون فعل ظاهرش اباهیه تصرف کرد حال حدیه بود یا نبود اباهیه کرد بوده چه رو بود؟ طبقه واحده اگر تلس شد زامن نیست اما اگر تلس نشد یا پولم برگردون باز برگردون زهارم باز برگردون حکمشینه بود درزاق قاضی زوره قاضی میگه او بر من ماشین رو گذاشت من خیلیت کلیت ماشین رو من دارم من خودش بود خب اگر ماشین تلنس شده که دامنی که این اباهه تصرف که کرد اما به لحاظ واقع اگر واقعا خود دافه قصدرش شکرده عمل او حرامه این منافع نداره اما عمل خود قاضی لازم نیست که حرام باشه البته این فرض از عنوان ماتین خارج این یک محله تا اینجا دلیل دوم و لعصالت زمان سمیت اضاکار از دعوا بعد از تلق این بحث زمان بود و عباراتیدم که خوندیم و آی خویی و دیگران که ما میتونیم اینجا قاعده علیت و جاری بکنیم یا این اصال از زمان همون قاعده علیت جواب ما اینه که قاعده علیت ما قبول نکنیم خب اینکه این دلیل خود به خود از بید حالا ما برسر قبول کردیم رفاقا للمشهور خود بکنیم یک آی خویی و دیگران اشکال کردن که زمان به معنای بعد تلف دیگه جاری نمیشه از الگر. چرا؟ چون هر دو گفتن هبه یکی گفته هبه صحیح یکی گفته هبه فاصله و عبض هبه جوی زمان می ما لایوزان به این اشکال مثل آی خویی و ادهی از باسته جواب این مطلب هم نسید من سابقه رم احس کردم اگر چیزی قابل وجود در هدیه فاصله زمان هست منو در هدیه صحیح میمیشه بعضی که تو کلمات اصحاب ما این مطلب رو خلال کلماتی که من دیدم و حتی روز بعضی اینکه به قاضی که مرحوم استاد در مالایز من به صحیح فاصله کشاد ایشون در اونجا برونه استثنا ایشون هم نظر نمی و بعد حبه رو در اکثر زبانه روش نمیگه هدر در این زمان نمیونه فاصله صحیح حال خویم ارسال مسلمات کردن و هر حال این اشکال به اصالت و زمان که اینجا جای اصالت زمان است این یک دو مطلب دو اینا اثبات کردن آهد زمان رو به همون نقصی که گفتیم چون نمی دونیم هبه بود یا نه علالیت به عموم علالیت به زمینه اصالت و عدم هبه صحیحه اصالت و عدم سبب ناغم که هبه صحیحه باشد پس این اثبات زمان میکنه این شکل جوابشان هم, هم بود که دیروز از مرموم آقایی روانی کنید آقایی خویی تا اینجا کنابی روانی قبوله درسته اصالت و عدم هدهی تحیهه جایی میشه به نظر ایشون لیکن مشکلش اینی که اصالت و صحه برش حاکمه و ما دیروز سوزیات دیروز پیده سوزیات دادیم که اصالت عدم سبب ناقل پی جاری نمیشه اصل عدم عزلیز جاری نمیشه چون استاد جاری میدونن از این جهت پیشون گفتن که برخورد کردن به اثارات و سهن. این هم نقطه جبان این روزم کلامی از مرمومه آی روانی خوبی حالا واقعا روشن نیست که واقعا به نظر من بعی دمانیشون باشه اصلا از این خارج خارجتون رفتن به استثاب حکمی خیلی بعید شعنیشون که باز ا به هر حال فیلن دیگه باید اون بحث که طور و تفصیل نکشیم به ذهن ما میاد که الان نقطه سوم، الان تقدیر زمان اون نقطه خیلی اساسی و فراموش نفرمونیم ما انز کردیم در هر دعوایشون اگر خدای نکرده محتراشونی به قضا بهت این نکات فرمی شما را آز فرمونیم گفت من نسب نفس و قاضیم بین اسنه تقزمه نفس و, و بغیر سکین ووالتگی سکی شدید در باب در یک عذاب به هر حال اگر انسان مبتلا شد این نکاس رو خوب دقت بکنید ما عرض کردیم اصول رو که می‌خواید جاری بکنیم همیشه محب به دعوا رو در نظر داشته باشید اون محب به دعوا خیلی مهمه مثلا در مانع‌نهاتی طرف میگه این هدیه فاسده است این آقا میگه در این هدیه صحیح هست. حالا اگر ما قاعده علالیت هم قبول کردیم گفت زمان ثابته. زامن. خوب درکت بکنیم. زامن بودن معناش این که هدیه فاسده. و رشبه گرفته. محسوسا با مسئله که ما هست کردیم. هدیه فاسد با رشبهش کهیه. رشبه خودشو عنوان نداره. هر توول دادهه روشی های باررانحلیهه هدیه آی که ر او از میش. پس مصب به دووا روشا شد مذهب به دعوا این است که یه حره تهیبه اون میگه حه فاصله خوب بهی خیلی زرا داره دقت میکن. شما برطرز آمین ص جایی کردین. تو چیه اینجا قرارال از اصلا اینجا عومه چون هر همطوری در کتاب. قوانونم کهی با هم قوانونم در کتاب قوانون داره که اصل به چهار معنا میاد یکیش عمومه. یعنی گاهیم مرادشون از اصل از سوی در قوان عموم؟ اموم ماها الان میشید مراد از اصل اصل لفظیه در قول اصل اولی خط مراد اصل اصل اینجا اصل لفظیه لعنی اصل عملی اصلات البراعد براعد زدمه مراد از اصلات زمان. این اصل لفظیه اصل در اصلیه امریه ماه علایت میگه شما که قبول دارین ماشین مال اونها عوض داره، پس تو دامنه. اما دقت بکنید ان و زمان هم برطرف جایی بشه برطرف. و بدی اون آیه قاضی زامنه. اما این به مذهب دعوا رفی نگذره. مذهب دعوا این است که هدیه فاصله به هدیه ثانیه. این لازمه مذهب دعوا این یک نکته بسیار ذریعی است که از هر در صادقی این که زاد ساله در چه اعمال آقل داره از زمان شیخ توسی در مخصول که کمترم دیدم آیان توجه به شو کنن چون آیات این نقطه بموزه است این نکته نقطه پیخایت ال اهمیه از کردیم که پیرم برکن فرمودن البیناس و علال مدعی ولی یدینا علال منکر یا علال مدعا در نصم دعا لیکن ملیار یا منکر بیشه این خیلی مشکله از کردین چند ملیار آمده در کتب اهل سنت هم آمده بحث کردن یه ملیار معروف از مدریا من اضاف حرکت کرد ملیار دوم که بیشتر معروفه مدریای که این که باونش مخالف اصله منکر موافر است که اینجا هران دارن اینجا حساب میکنن اینجا آمده از راه اصل از از زمان یعنی عموم زمان خوب ده فکر اما جهرشه میگه چون عموم حراریت میگه زامنه پس این آقای قاضی زامنه پس اگر آقای قاضی زامنه شد هر با اون که که ماشین رو داده هر. با اصالات زمان ثابت کردیم که هم بایشانه لیکن اصالات و زمان خیلی از مصب دعوان اگر زامنگوز پس هم با این آغاز چون اگر هبه پاسد بود زمانه یعنی هبه به عنوان رشوه هبه پاسد به عنوان رشوه خود از موجب زمانه خب شما سوال بفرمین خب بگیمتون ملازمه از نه ملازمه میدید فرقش خیلی واضحه رنگه ملازمه میدید چون اگر آمدین گفتید دقیق کنید حق با این آقایی که ماشین داده و قاضی هده مجانیه پاسده دیگرفت بارمان الحکمله پس قاضی میشه به شبخار مرتکل کبیره با قول موزی به دادگاه انتظامی خودات بفرست ما رو باید عزمش بکنه طبق قاعده این میشه مرتکب کبیره و فاسد. اما اگر شما گفتین اصالت و زمان این که آدم فاسد نمی کنه. فوقش اشتباه کرده گرفته اساس زمان و زمان اثبات نمیکنه بو با... خب دقت کنید اساسات زمان فوقش اثبات میکنه قاضی باید ماشین برگردونه این اساس زمان دقت بکنید اساسات زمان فوقش میگه قاضی ماشین برگردونه اما اثبات میکنه قاضی رشوه گرفته پس قاضی چون مرتکب کبیره شده دیگر کنی پس یک مثب به دعوی داریم یکی لازمه یک به دعوی این لازمش هم در اینجا خیلی واضح نیست لذا به نظر ما اگر بخواهیم با حسابت و زمان اثبات بکنیم اون که مشکل داری کنیم و گذاب حرف کردیم از دیگر اصلا برداشتنی مزدیمون که دوم موافق هست و مقابل هست موافق ظاهر و مخالف ظاهر مورد سبون قبل چهارو ما در این مسئله به قرط مراجعه میکنید فهم قرطی چون من اون روز اشاره کردم خوب دقت بکنید معیار مدعی و منکر نه در روایت رسول الله آمده نه در روایت ما اینکه به کارید و بعد که در بعد در سروع اختلافی نه همه برو ازدهی از, از سروع اختلافی در روایت ما آمده خوب دقت بکنید به حضر ظاهرم مثلا این آقا با باشه طور علاقه گفتی ناقا ممکمه مثلا خلاف بزانه آمده من این بحث گادی رست بکنم این بحث قضایی رست تنگینی هم کار سختی هم, هم پس چهار تا مقنا در معرفت مزدری ممکن هست تر بشن این در رواج نیامده مطابقه یکی از مزدری مهندات تبکه سرک یکی مزدری مخالف بارست یکی مدعی مخالف با ظاهر یکی مدعی اون پخنبر کلام رو با اون فرقیم از بیازه علاق مدعی هرکسی که در نظر اون باشی مدعی یک مطلبی بشه حالا خلاف ظاهر سویش هست خلاف اصل هست خلاف مثلا جهات ظاهر اون میشه مدعی اگر دعوا اینجوری باشه خوب دفعه بکنیم ز... میگه بابا این آن من هندیه داشت بله بشتون هندیه نیش تو کرد برای بود چیز برمان رشه باشه هر یه فاصله باشه بازده. خب در اینجا انصاف قسطه اگر ما باشیم و با همین فهم و وفی نامده ایه خوب دقیق کنیم ما یک نمیخویم به اثارت زمان این آخو اثارت و زمان ایفید باشه زمان مثل دعوا دعوانیست بلکه لازم شد نیست خوب دقیق شما چون ما برپرز گفتیم قاضی زامنه به تلازم هم نمیشونه بگیم قاضیرش را پس خاسقه، پس باید از طرابت عموش مکنیم. این همون نکات فنیز گرفت کردن. تحجیم هست از آلام در اینجا این نقطه اساسی رو توجه نکردن. ما برپرس هم اساس و زمانه بیانیم. این چه رفتی به ما نهمتی کار نرا اساس زمان... بچه‌ها اساساً کلاً درستیم چون علایق ما قبول نکردیم خلافاً مشهور البته مرحوم استاد هم قبول کردن آخویی لكن یکو نکته نقطه نکته دیگری با تعریفه تاریخی دارید اعتراف کنید که آیه مثلا آیه بجولی در فہمین رواد مشهور از بین فريقه و سنی و شیعه بین سنی‌ها و شیعه یک تا چیزا توضیحات تاریخی که مفصل است که ما قبول کنیم قدمو سنده زریف به سنده نداره مرسل عمل اعصال هم جاگردید این اشمال مرگاه ما تحلیل تاریخی کردیم تحلیل تاریخی کردیم توضیح دادیم به نظر من با اون توضیحاتی گفتیم کاملا واضح شد که این قادریت اصلا ثابت میدرواده هم نگم خیلی توضیح مفصلی رو ارسیم غیر قیل از تمامی این شباهات لفت بکنید قیل از تمامی دیگری است اساس مث به درد مثب دعوانه میخوره مگر مثب دعوان رو عرض بکنم مثلا اینجوری بگه اون آقا بگه این آقا زامنه چون یعنی دعوان زمانه اون آقا بگه من زامن نیستم خوب دقت بکنیم اگر مثب روشن شد نکته فنی. اگر مثب دعوان رد زمان اون وقت برد زمان. اگر قادر یاد قبول کردیم برد خب اقلایی در ایست که ثابت بشه که بدون ازنه این ثابت میسه بعد مهم گفته حدیه دادم این مقدارش دیگه اقلایی داره قبول نیست. روشن شد ام باید که باز اساس زمان مشهر میگه داری که آنم اشاره کرد شیخم اشاره داره پس نقطه اول این اعراف و به درد ما نحنم میخورد اصالت و زمانم با این مسئله به درد میخوره. خیلی ظرافته یعنی برطرفا شما اساس زمان جاری برطرف جاری بدونید به درد اثبات این که ملحقه تن رشوه نمیخوره این قاضی رشوه خورده روشن شو چون؟, چون ممکن است انسان اشتباها مال دیگه تلف کنه زامون باشه زمان غیر از تکه کا به با اصالت زمان شما نمیشه بگین این قاضی رشوه خورده پس باید از دردکار خزایی بندازنش بیون فاطقه هم تو بیون این با مختلف در با فرق میکنه و اینشالله تو بحثه های اندر دقیقا میدونم شون اختلافات رو به از رویتها گفتیم توی خلاف مکاسه محرمه توی بین اینا اختلافات ذرک شده اختلافات در بین افراد در اصل در مصرون احل سنت خیلی زیاد داره یه مقدارش به قراصد شیخ توسی از شیخ خرد به ما رسیله باز هم علمای ما ماتن کردن در شرایط اون هم فرول مهم شورددن و این انصافاً به درد بابه، به دردن باقع قضاوت میخوره و این کار خوبی هم هست در همین قوقع غذایی هم در این چند سالخهشا سیب دهها هزار مسئله رو که سوال شده و باقع غذی مشکل داشته دادن مثلا به ی از و حوزه که جواب بدن که این جواب رو غذا هم این کار خوبی این کار کار خوبی هستن یعنی تو جامعه به اختیی داریم بینده این سوال این سؤال اما یه هست اصولا این توسعیه بکر پس دقت بخوایی در باب غذابت مثب دعوی رو با لازمه دعوا هم خلط نشه شما اثبات بخوایی این آقا زامنه قاضی زامنه اما اونجای اثبات که قاضی روی شو حرام انجام داده ارتکاب حرام کرد. قصده بخوایی بخواد عملش جلدش رو من واشیمه اسباطی کنین حدیثی در زمان رو قبول کردیم ممکن است شما زمان رو, رو بر قبول کردیم اثبات بکنید اثبات نشد پس برابری این اثباته اون عرف بینیتن باطل اثباته زمانم باطل چون حدیث علویت ثابت نیست این دو بحث از هم <تصفيق> نه نه نه نه, نه, نه, نه, نه. <تصفيق> مثل به دعوایی که طرف و ولی ازا در ورز فتاقا داره به نظرم هم داره که اگر پولی از کسی گرفتی و ننرشتودی بردش دادی طرف میگه آشونم گردم پول نگرفی و ندادی میگه اون طرف میتونی که تو از من پول نمیخواهی <تصفيق> برم بخواهی چون اگر بگه بله من از تو پول گرفتم به تو ندادم چون باید اثمات بخواه با دادم نوشته هم نداره اینه که مصحب دعوا همیشه قابل توجهه که انسان چطور طرح دعوا بکنه اون لذا طبق طرح دعوا مدعی و ممکن مشخص میشه و این که ایشون فرمود و تحریح احسانی و, احسانی و احسانت سهه این مصحبی ایشان از که در مرومه و از همی راه وارد شده هر و فرمونه درست ممکن ما حتی تصویر احسانتو زمان بکنید لکن از سالات سهه حاکم است بر از زمان و توضیحات ایشه ویروز و ویروز که در پیوز مفسران هست دیگه تکرار نکنند، فقط آقای خویی جمعه یا خود مرموم شیخ متعرض اشکال ایروانی نشده هم اشکال مرمومی این بود که از سالات سهه اثبات صحت عمل نمیکنه. کنه از, از, از این عبارت مرمومی روانی مجمل بود ما عبارت رو توضیح بیشتری ارز کردیم ارز کردم که این خیلی مطلب مهمه زیاد تکرار شده و زیاد هم بهش مرتلا هستیم باز تکرارش اشغال نداره اصالت و صحیح پیفعل نفس داریم اصالت و صحیح پیفعل غیب داریم اصالت و صحیح پیفعل نفس قائل تجاوز و و درست هست و معنای اساس صحیبی نه نست نه یعنی عمل شما کامله خوب بخش بکنید امام میتونم بلا قدرکت خود مفاد اساس صحیح. عملتون کامله بعد از وضوع شک کردین وضوعتون درسته یا نه اساس صراح میگه عمل درسته وضوع درسته صحیب این اسمش اساس صحیبی فیرد اما اساس صحیبی فیرد غیر یک کسی الان عبای خریده کتابی خریده ما شک میکنیم به او درست یا نه میگه آقا این عبد رفتم خریدم مثلا ما سر مپرسند تو این زمان شک میکنیم درست نه اصالتا سه حده فیر غیر ببین به ایشان درسته نکاح ایشان درسته طلاق ایشان درسته اشکال مرحوم ایروانی اینه تحجیب هست مرحوم اشاره اشکال مگه مگر ناصرشون قبول کرده باشن اشکال ایروانی اشکال من میلوانی که این اصالات و صحیحی فیفره. اگر مراد این است که اون عمل صحیح واجد اجزاء شود، این دمیگ ندارست ما در هیچ روالیتی نداریم که اگر به داد به شکل بکنید. اگر مراد از اساس و طرف ارتکاب هرام میکرده برای ارساله زرفه در حقیق الا آن واقع نزرسنه رو باید درست درسته حالا است در واقع نکارش فاسد باشه در واقع بینش فاسد باشه اما به حسب ظاهرش ما رو کنه بکنیشون مرتقه به حرام شد. لذا مرموهایی روانی اشکالش اینه ما اینجا با اساس سهه چی کار بکنیم بخاریم هده همچه اساس سهه این هم زوده جوایی که بزنن اکثر مرد رو خبره اما اگر یه جو بذار باد اونجا دیگه راست هم هست. استاد، مرد و استاد آی بچون نجیب نیست؟ امروز واقعا کشور چیزی شده نه؟ نه تو یکی برای دادن چیزی یکی. توانایی آساتو در آن مراجعه سه تیفه در مورد آیت اول وجونی هم عمده دلیل هیچ اجماعی سیره گرفتن ایشون قبول در شما روایت نداره البته ایشون نوشتن که ایده از رواه و آیات احکام ترانسفر کرده لكن دلالت نداره راست حق با ایشان عمده در هم سیره از عمده بی می کار خراب اینا اشتباه جارب... نه کار اشتباه کار هم هم حرام نکرده حالا حرامه اون فرض کن مثلا من میذارم این خمره ببین نه این حرام انجام نذ. اون نمیدونه. احتمال تحریم مثلا در اینجا تو از علی حقی که اعلی قاضی کار حرام نکرده. ایمانش نیست. اما این چه به صحیحه؟ مثلا دیگه نیست. این ضعف داره. او شايفه؟ ان تو صحیح فی فعل النصب معنوشی که عمل منثریه. ان صادق است این بی فردی است، مالشی که ارث کرده آن را نمی‌کند. بله، البته احتمالا احتمالاً سر رشیم باشه که مردم اصول این اصطلاحات معمول بدانند؟ اصطلاحات سریع بی فرد استفاده می‌کنند، صادق است، استفاده نمی‌شه. یعنی آی بدانند اسرار داشته اند. اسرار کتیبه‌ای نو اعلام، تیرش شاره و شاره این امضا کردند. این صاحب احتمالاً تو جامعه ما هست. یعنی این بسید مشکل اینه که این دلیل دلیل لبی دلیل که لبی شد اصلاح می شد یعنی اشی اصلاح نزده یعنی در اینجا قادم یه هلوی را سهی بود اون آقا که مالک می گه می نبوده من ممکنه سیره دیگه اینجا نگیره <تصحیح> اون دلیل لبی که بوشن شد کاش مرمایه گیره باییم توضیح بیشن می داد وند یکی لوبیه اساس سهر شورایش به سیر رو اجماع کرده یعنی سیره نه اجماع به این معنی تایید سیره انصافا به لحاظ تایید سیره اجمالا درسته خاص برابر این این اساس سهم که آقای خویی مرحوم شیخ. شیخ هم اساس سهر داشته که این مشکل داره که اکثر که مرحومای مرحوم ایروانی هم اشخال... اشاره اشاره کرده تفسیر دین عبادات من نه ولیکن یون که ان یوم چون مخرب به دعوا خوب دقت بکنید چون مخرب به دعوا درست هديه صحیح و فاسده لكن فسادش به لحاظ حرمت رشوه است نگاه کنید اگر به لحاظ به مخرب به دعوا نگاه بکنید ممکن است بگیم به لحاظ مخرب به دعوا همین که اساس سهه یعنی ارتکا و حرام نکرده ارتکا و حرام این برای ما نحنفی کافی باشه ل... چرا؟ چون اگه هده فاسده شد به خاطر حرمت رشه فاسده نه لازمش نیست چون هده فاسده اینه ها رشت میشه ما. و اگر اینجور گفتیم که اینم برید نیست انصافه چون این میگه من هده فاسده رو با با عنوان رکشه بشتدم این میگه آه هده داده به ما اصلا نه این صحبت بوده نه صحبت حکمله بوده اصلا این صحبت ها نبوده در این نیست که ما در اینجا از حالات و ولو به معنای عدم ارتکاب حرام رو جاری میکنیم و بگیم هم بازیه اون طرف باز با اقامه بیانه بکنم و صلی اللہ علی محمد و آله balo